اعوذ بالله السمی العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام على نبینا و آله الطاهرین. خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام داریم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 الفهم بشی این علم بشی به شرط اینکه متکلم از مخاطب فهم چیزی را میخواد برای او از قبل معلوم نباشه اگه برای او از قبل معلوم باشه میشه استفهام مجازی که با قرائن فهم بعد وارد بحث ادوات استفهام شدیم گفتیم دو نوع حرف است و اسم است و گفتیم حرف دو نوع همزه است و هل همزه برای تصور و تصدیق هر دو میاد هل فقط برای تصدیق بعد گفتیم یک سری اسماء استفهام هم داریم این اسماء استفهام محل اعرابی دارند همهشون مبنی هستند جز ای و همه اینها برای تصور گفتیم که وقتی سوال از تصور باشه جواب به تعینه وقتی که سوال از تصدیق باشه جواب با نعم و لا مباحث قبل رو یه مقلالی دوره کردیم حالا وارد نموزج کتاب خود دقت کنید میگه که نموزج یک شب فالمدینه حریق لم تره اتفاق افتاده در این شهر خریقی آتش یا آتش سوزی تو شهر شده لم ترہ آتش سوزی که شما اونو ندیدید یا آتش سوزی اتفاق افتاده و شما اونو ندیدید بسل صدیق که آن رؤیتہ یا پس سوال کن از دوست خوده که آیا او دیده یا ندید. پس سوال از اصل جمله است که آیا تو آتشتوزی رو دیدی یا ندیدی؟ درست شد؟ من ندیدم پس بنایه علم ندارم که اصلا آتش شده یا نشده از دوستم سوال میکنم نمیدونم اون دیده یا ندیده نمیدونم واقعا اون دیده یا ندیده مثلا از او سوال میکنم تو ی آتشتوزی رو دیدی یا پس من نسبت به اینکه آیا این دوست من آتش سوزی رو دیده یا ندیده جاهلم سوال میکنم تا بفهمم که او دیده است یا بگید ندیده است و سوال از تصدیقه وقتی سوال از تصدیق باشه ما میتونیم از حمزه استفاده کنیم و میتونیم از حل استفاده کنیم درست شد؟ هر کدوم رو بیاریم امکانش هست نگاه کنید میتونیم این طور بگیم حل یا ا حل رأیت یا ارعیت الحریق اللذی شب و فلمدینه آیا واتش سوزی که در شهر اتفاق افتاده شما دیدی از سوال هنا عن این از اینکه او دیده یا ندیده و هل و الهمزتو صالحتان للاستفهاما منها هل و همزه هر دو میتونن اینجا بکار کار بره ذکر و اهداهما و یو اتا بعدها بل جمله یا همزه یا هل ذکر میشه بعدش هم اون جمله مورد سوال آورده میشه خوب. پس اینجا ما داریم سوال از نسبت می چون نمیدونیم واقعا میدونیم آتش سوزی شده خب آتش گرفته اما نمیدونیم که این دوست ما این آتش سوزی رو دیده یا ندیده از نسبت اینکه او دیده است یا ندیده است سوال می کنیم خب اینجا مجبوریم چکار بکنیم یا از همزه استفاده کنیم یا از حل و برای تصییر جوابش چیه جوابش هم با نعم یا لا یا اون دوست میگه نعم یعنی رایت الحریق میگه لا یعنی ما رعی حریق درست شد؟ خب دو سمعته به گوشت خورده سمعت انه احد اخویک شنیدی که یکی از دوتا داده شد انه اهد اخویک اخویک علیین و نجیبن علیین و نجیبن حلق بیانه برای اخویک شنیدی یکی از دوتا داده شد دوتا داده شد که علی هست و نجیب یکی از این دوتا آقا ان قریق نجات داده هست مقروغی رو قریق فعیل به من و مفعوله یعنی مقروغ کسی غرق شده بود کسی داشته تو آب غرق می شده شنیدی یکی از داداشای تو اون نجات داده بود گفتند به گوشت رسیده یکی از داداشا شخصی رو از مرد نجات داد حالا شما از یکی از این داداشا فرض کنیم از علی آقا سؤال میکنی که تو بودی که اون شخص رو نجات دادی یا نجیب بود اینجا نسبتو شما میدونی که یکیشون اهد و اخویه من غذا غریقت اینو میدونی یکی از دوتا داداش دو من شخصی که قرق میشد و نجات داد اینو میدونی اما نمیدونی که این اهد و اخویه یکی از دوتا دو من علی آقاست یا آقا نجیبه حالا از علی سؤال میکنی که تو بودی نجات دادی یا نجیب خب اینجا سوال از تصور یعنی سوال از مصند علیه نجات دهنده یکیشون باید بیاد بعد از حمزه و یکیشون بره بعد از ان. یعنی باید بگی ا انت ا به علی میگی ان غزل غریقا ا انت ان غزل یا انقذ تل هر دو درسته انقذ ا انت الذی ان غزل غریقا الذی انقز القریقه یا انتال لذی انقز تل قریقه انقز فسیح داره انتال لذی انقز القریقه یا انقز تل قریقه ام نجیبون تو بودی اون کسی که غریق رو نجات داد یا آقا نجیب یکی از این دو. اونم باید جواب بده بگه انه یا بگه نجیبون نگاه کنید انت الذي انقذت الغريقا و انقذ الغريقا عايد صله اگر ضمیر غایب باشه بهتره تو این جور جاها مخاطب در بیاد مثل مخاطبم باشه جایزه ولی بهترینی که غریب باشه غایب باشه مثل یا ایها الذين امنوا انت الذي انقذت الغريقا ام نجیب یا انت الذي انقذت الغريقا ام نجیب از سواله هنال مستدلعه ای. فیوستف همو بلهم با همزه استفهام بشه و یوعتا بعدها بل عنه مسئول بعدش مسئولان اند میاد سم یوعتا به معادلن بعد، بقیه معادلی میاد بعد است پس سوال است قصوره انت لذی انقضه یا انقضه تلغریغ اون غریق رو تو نجات دادی ام نجیبون اونم باید جواب بده انه یا بگه نجیبون اما مثال بعد ازا کنده حرفو ان البنفسج یک طرفی احد الفصلین الخریف او الشتاء لا على التعید میگه هنگامی که تو میشناسی که گل بنفشه فراوان میشه گل بنفشه زیاد است در یکی از این دو تا فصل پاییز یا زمستون میدونی تو بهار و تابستون گل بنفشه نیست و این گل بنفشه در ذهنم اینطوریه که یا تو پاییز این گل بنفشه فراوان میشه یا در زمستان نمیدونی ولی تو ذهنت اینه که یا تو پاییز یا تو زمستان فضع سوالن پس میدونی که گل بنفشه تو یه فصلی زیاد میشه نمیدونی که اون فصل زمستان است یا پاییزه فزع سوالا سوالی طرح کن طلبو فیهه که در اون طلب میکنی تعیین احد الفصلین که مخاطب برای تو یکی از این دو فصل رو تعیین کنه یعنی اینجا سوال از ظرفه وقت زمانه شو؟ سوال از اینکه گل بنفشه زیاد میشه یا نمیشه نداریم. اون بله میدونیم زیاد میشه. اما نمیدونیم تو پایی زیاد میشه یا تو زمستون. سوال از ظرفه. در اینجا که سوال از ظرفه، درست شو؟ ما باید از چی استفاده کنیم؟ از همزه و چون سوال از تصور. درست شد. اینطور میگیم: افل خریفه یکسر البنفسج و انف شتا. ام فشتاء. ام؟ آیا در زمستان فراوان می شود گل یا در پاییز؟ سوال بکن افل خریف آیا در پاییز یک سلول بنفشج رو هم فشتا اونم باید سوال کن جواب بده بگه فل خریف یا بگه فشتا ظرف ها می توانستن بگه افل یکسرو یک سلول رو شتا ان. چون ظرف میتونه به شکل منصوب بیاد میتونم به ش جا مجبور بیاد صلی تو یا اومل جماعته یا فی یاعممل جماعت. از سوالو هانا ان ظرف سوال از ظرف وقته و یا تبعفی تکینهیم و تو به مثال سابق در تشکیل اون همون روشی رو میریم که تو مثال قبل گفتی پاسخ هم با نهما ل خوبی راحت بود و ما درس رو تصور و تصدیق رو دوره کردیم حالا میایم توی نموزج دوم معانی مجازی استفهام رو مورد بحث قرار میدیم معانی مجازی دقت کنیم نموزجن لبیان لعقراز لتی یدل و الاستفهام حل استفهامون فل امثلت لعاتیت نموزج برا بیان عقرازی که دلالت میکنه برون استفهام در مثالهای زیر قال عبو تمام فلمدی آقای عبو تمام در مدح چنین گفت حل اجتمعت حل اجتمعت احیا و ادنان کلها تحکید احیا همهشون به ملتهمن الا و الا امیرو ها این و انت, ها. ای و انت ها وابش واب حالیه است انت مبتد و خبر ها خبر خواهم برمیگرده به احیاء احیا یعنی توائف قبائل حی قوم این استثناء چه نوع استثنائیه؟ مفرق چون بعد از الله حال آمده قوم استثنائی مفرق یادتون باشه گفتیم تو کلام منفی واقع میشه یا شبه نفی پس این حل به معنای نفی حل اجتمعت یعنی ما اجتمعت مجتمع. یعنی جمع نشودند توائف ادنان همه به ملتهم در یک میدان جنگی همه تواعیف ادنان جمع... یعنی عرب همه توائف و قبائل عرب چون ادنان جد عربه همه توائف ادنان در جای جمع نشودند همشون مگر در حالی که تو امیر شد یعنی تواعف عدنان هر کجا جمع شدند نبوده مگر در این حال کدوم حال؟ این حالی که تو امیر اونها باشی سالار اونها باشی تو گل سرسبد همه توائف عربی تواعف عرب در جای جمع نشدند مگر در حالی که تو امیر و سالار اونها بودی. خب حل اجتمعت یعنی مجتمعت استثناء مفرق است که در کلام منفی با یعنی ما اجتماعت احیا و عدنان کلها به ملتهمن یعنی فی ملتهمن ملتهم یعنی میدان جنگ از لحم میدان جنگ یعنی جایی که جنگ تمبتم میشه اونو میگن ملتهم معرکه جمع نشدن عرب همشون در یک میدان جنگی در هیچ حالت مگر در این حالت کدوم حالت؟ حالتی که تو سالار و امیر اونها هستی پایین میگه احیا و ادنان بوتونها بطن یعنی تیره تیره های ادنان تواعف ادنان الملت هم مکان و اشتداد القطال اونجایی که جنگ خیلی شدت پیدا میکنه ملت هم اسم مکانه یعنی محل جنگ تنبتن که؟ پس حل تمد احیا و عدنان استفخان معنای مجازی داره به معنای نفی. قرینش چیه؟ استثناء مفرق در کلام منفی واقع میشه یا شبه نفل. لحنن المعنا خودش داره توضیح میده زیرا معنا اینه انبوتون عدنان لم تجتمه. تباعف عدنان در جای جمع نشدن لم تجتمه فی مکان فتالن. در جای جنگی در میدان جنگی جمع نشدن. الا و انت امیرون علیه مگر در حالی که تو سالار اونها بودی و امیر اونها خب بریم مثال دوم مثال دوم رو نگاه کنید میگه اکفرو که من کفران نعمت تو رو کنم من نسبت به تو نمکدون رو بشکنم نمک رو بخورم و نمکتون رو بشکنم اکفر که انعما ان عندي اکفر که انعما اندی, ان نعماء اندی. نعماء یعنی نعمت تمام این نعمت هایی که اندی پیش من است آیا من این نعمت هایی که از تو پیش من است رو کفران کنم من نمک رو بشکنم و نمک رو خورده باشم آیا من نمک رو بخورم و نمکتون رو بشکنم و قد آیا من این کارو بکنم در حالی که قد نمت علیه نمو الفجر نمت زمینش میخوره به نعما و حالا که الطاف و نعمتهای تو فرا گرفته نمو کرده بر من مثل نمو و صوب چطور یه سفیدی کمی میزنه بعد همه جا رو فرا میگه نعمت تو هم از یه جایی شروع شد یه دفعه همه وجود ما رو فرا گرفت مثل رشد صوب که روز رو به دنبال خودش میاره آیا میشه روز رو انکار کرد؟ نه نعمت هایی تو هم نمیشه انکار کرد آیا من نعمت هایی تو رو انکار کنم؟ در حالی که نعمت های تو مثل طلوع فجر نمو کرده بر وجود من ول فجر و سات او و حالا که فجر روشن است کسی نمیتونه صبح و فجر رو انکار کنه ول فجرو ساتو. فجر و سات او فجر و حالا که فجر بگید آشکار است ساعته و روشن است کسی قابلیت انکار اجبر و جنعما خب اینجا استفهام چه معنایی دارد توی کتاب نوشته استفهام الانکار انکار ما دو جور براتون انکار رو گفتیم یکی انکار ابتالی و دیگری انکار توبیخی حالا اگر با توجه به اون مطالبی که من گفتم کتابشون نمیشه انکار، این کدومشه انکار ابطالیه یا انکار توبیخیه با تعاریفی که ما برای شما گفتیم که میگه آیا من نعمات تو که پیش من هستش رو کفران کنم اونم در حالی که همه این نعمات بر من فراگیر شده مثل فراگیر شدن و نماف کردن فجر در حالی که فجر ساطع قابلیت انکار به نظرتون نگاه کنید خودش چی گفته بعد بگید احسن است و درستم است انکار ابتالیه یعنی چی؟ یعنی همچین چیزی واقع نمیشه و اگر کسی هم بگه من چین کفرانی خواهم کرد دروغ میگه نگاه کنید فئن البخاری یرید ان یقول للممدوح انه لا یلیق بی ان اکفر اکه شایسته نیست بر من که انکار کنم کفران کنم نعمت های تو رو و غمرت قمرت و قد به ها غم را در حالی که تو فرا گرفته ای مرا فرا گرفتنی با این یا وقت قمرتنی به ها چه درست نیست قمرتنی به ها. چون با ها نبود میشد شود به قمرتنی به ها... یعنی عشملتنی و حالا که تو فرا گرفتی مرا با این نعمت خواد قمرن فرا گرفتنی و بدلتنی به زله ازا و ذلت منو تبدیل به ازت کرد و بالخضوع والخشوعه عظمتن و علوه با. و خشوع و خضوع من رو که جلوه همه سرپایین بودن تو تبدیلش کردی به عزت و عزمت یعنی بگه انا سلام رو باده خب پس خواست میگه که من این کار رو نمی کنم هر کسی هم مدعی باشه که من این کار رو می کنم دروغ میگه این کار ابتادی بعد این بیت دومش دیگه دنباله یه بحثه میگه و انتل لسی اعززتنی بعد و زلد. تو کسی هستی که منو عزیز کردی بعد از اینکه ذلیل بودم؟ من جلی همه خار و تو سری خور بودم تو منو آدم کردی، عزیز کردی فلل قولو مخفوزون ولد طرفو شد الان دیگه نه حرفم صدام پایینه مخفوزه و نه چشمم پایینه خواهشه آخه آدم هایی که ضعیف و زلیل هستن، آه سرشون بذار پایین تو چشم طرف نگاه نمی کنن و موقعی هم که با یک حرف میزنن خیلی همچین آروم آسته و خازانه صحبت میکنن کلامشون میگه الان نه قشنگ تو چه شوه نگاه میکنم حرفم ها خیلی و روشن و سفت و محکم میزنم چرا چون دیگه ذلیل نیستم که و انتل الذی اعززتنی تو کسی هستی که منو عزیز کردی بعد از ذلتی بعد از اینکه من ذلیل بودن بنابراین نه دیگه حرفم پایینه نه با صدای بلند هرچی بخون میگم و نه چشمم پایینه یوری که نتونم تو چش افراد نه الان تو چش افراد صاف نگاه میکنم هرچی هم الان برسه بهشون صاف میگم پایین میگه ماکان لینن. اون یک خیلی نرمه لیست فیه شده اون اصلا توش درستی نیست آدم هایی که ضعیفن کرده امیزن که مباده به طرف مقابل برخورد کنه و یه چیزی بکنه و تف خاشه و چشم خاشه خوشه این نفی و ذله چشمی که تو شکستگی و ذلت باشه آ ساخت تو چش طرف نگاه نکنه؟ اینو میگن طرف خاشه خب تمام شد سر رو نگاه کن و قاله و قال ابو هم نه نه و قال ابن رومی ف ابن رومی در مرده گفته علست المرعه آیا تو اون آدمی نیستی یجبی کل حمدن یجبی یعنی یجمعو جمع میکنه کل حمدن هر حمد و ستایشتو تو اون آدمی نیستی که هرکی میخواد کسی رو حمد کنه اینو حمد میکنه تو اون آدمی نیستی که جمع میکنه هر حمدی رو یعنی تمام ستایشگران او رو ستایش میکنن. چرا چون او عطا و سلو و کرم میکنه. تو اون آدمی نیستی که همه متش میکنن. ازالم یکن لله جابی اونم تازه همه مدهش میکنن. همد همه رو جمع میکنه. یعنی سلو و کرم میکنه به همه. ازالم یکن. ما بعد از ازازاید است. ازالم یکن. زمانی که نیست ملحمده برای حمد و ستایش جاوند جمع کننده ای. یعنی کسی پول نمیده کسی کلام نمیکنه کسی هم کسی رو مد نمیکنه تو در یه چنین شرایطی هرچه چه حمد هست رو تو جمع کردی آیا تو اون نیستی آیا تو کسی نیستی که هرچی حمد و ستایشه همه رو جمع کرده اونم در موقعی که کسی پول حمد پرداخت نمیکنه یعنی کسی به شهراب مد دهین اتواصلی نمی‌کنه تو هرچی اتواصل هست رو تو همه رو می‌خواد اگر یادتون باشه تو کتاب گفتیم برای تقریره یعنی برای اقرار گرفتم اون این غلطه کسی نمیخواد بیاد اقرار بگیره از خلیفه خودش اقرار کن آقا تو اون کسی هستی که هرچی هم دو سه تا اشو جمع بعد تازه اگرم اقرار باشه بعد اقرار کنه به نفع بلکه این گفتیم نفی در نفیه که معناش میشه اثبات و خیلی قدرتش بیشتر یعنی اینشون بخواسته اینطوری بگه انتا المر یجبی انتا المر. تو اون آدمی هستی که یجبی کل هم همده. تو اون آدمی هستی که یجبی کل اگه میگفت انت المر یجبی کل همده. ها؟ یعنی تو اون آدمی هستی که هر چیزی رو که مت و ستایش باشه در مت او او جمع میکنه اما وقتی که گفت السته این تحکیده آیا تو اون نیستی؟ یعنی صد درصد هستی؟ برمانگرش لعنه این اون موقع خیلی تاکیدش بیشتره و این چیزی که گفته دو عنوان تغییر تقریب غلطه السته المر کل هم دن نفعه و نفعه در نفعه میشه اثبات یعنی انت المر و کل هم دن و درش تحکیده بیشتره لأن <تصفيق> الغائلة يريد أن يحمل الممدوح يحملها يعني يجبر عين غلطه زیرا قائل اراده داره که وادار کند ممدوح رو به اقرار به آنچه که او ادعا کرده از استماع مهامد لازم نه اصلا نمیخواد تو بیا خلیفه اقرار کن به اینکه همه مهابد مهامد برای تو جمع این غلطه بلکه منظورش اینه که ها قطعا تو کسی هستی که هرچه هم دستو جمع میکنی و این از تو جزین هم نیست بعدی را نگاه کنید قال تمام تمامه آقای عبو تمام گفته مال الخطوب خط یعنی مصیبت مشکل مال الخطوب چه شده است این مصیبت ها رو الخطوب این مسیبت ها چشونه فقط علیه این تفتال علیه حال است از برای خودتو. در حالی که تقیان کردن بر من این مسیبت ها چشون شده در حالی که بر من تقیان کردن یعنی بر من گردن کشی میکنن من پررویی میکنن این مسیبت ها چشونه که برای من گردن کشی و پررویی میکنن تغیانه بر من میکنن میگیم بچه توست میگه که انگار که اینها این مصیبتها ها جهلت یادشون رفته به انن ندا که انگار اینا یادشون رفته که عطا و کرم تو در کمینه عطا و کرم تو میاد همه این مصیبت ها رو میشوره میبره مدید این مصیبت ها چیشونه اینطور پردوهی دارن برمن میکنن گردن کشی میکنن انگار یادشون رفته که عطا و کرمتو در کمینه در کمینگاه میاد و اینها رو ترتیبشون رو میده و اینها رو میشوره و میبره خب استفخام اینجا برد چیه مده آت هجم اتباقا تو قرآنم هست که میگه حضرت سلیمان داشت سان میدید چون سلیمان حتی زبان حیبانات رو میدونه سیطره عظیمی داشت و لشکریانو زیر دستان خودش میگه داش سان میدید دید هدهد که توتی بود اونجا اون سر جای خودش نیست خب لذا گوه مالی لا ارل هدهد مالی لا ارل هدهد گوه امروز من ترجمه من چه ام شده امروز امروز چه خبره برا من که من هدهد رو نمیبینم آه یعنی امروز عجیبه برای من که چه اتفاقی برای من افتاده که یک کسی بدون اینکه اجازه من رو داشته باشه از توی لشکریان من قایبه تحجب میکنم امروز برای من چه اتفاقی افتاده که من یکی از سربازانم که خود خود باشه رو نیمیده مالی لا عرل حدوده خوده اون لا عرل حد خود حال است از برای اون یای لی مثل اینجا مال الخطوب که طبط علیه حال است از برای خطوب تعجب مال الخطوب طبط علیه تعجب فن عبا تمامن یعجب و زیرا تمام تعجب میکنه من اجتماع من اجتماع مهام دله تعجب میکنه من تراکم شدائب از اجتماع و تراکم مصیبت ها درست شد علی برو فيهنه فيهنه ان ممدوحه لهو بالمرصاد در موقعی که ممدوح او در چمینگاه وایزده کرم ممدوح او در جمین است تعجب میکنم که چطور شدائد اینطور طور پر رو شدند و برای من در آن گردن کشی میکنند فین نباتم با من یعجب من تراكم الشدائد علی فيهنه اَنَّمَمْدُوهَهُ لَهَا بِالْمِرْسَاتِ یدفعه ها انها همه این و از او دور میکنه به نداه و عطایه با عطا و کرمش و لذالکه قاله که انها جهلت و انه نداه که مرساد انگار این مصیبت ها که عطا و کرم تو در کمین یجبی یعنی یجمع البته یجبی به معنای یجبعو هست جبا یجبی ولی جمع کردن پول مالیات خراج این دو چیزها اونتاش چه چجرب میکنن جمع کردن مالیات پول خراج حتی جمع کردن کرایه تو ماشین اینا برای این نوع چیزها به کار میره تو کشورهای عربی که هاشون نوشته یه چیزی ساعد الجابی به اسقر نقدن کافی یعنی کافی ساعد الجابی یعنی این شاگرد شوفر شاگرد شاگرداننده را کمک کن به اسقر نقدن کافی با کمترین پودی که کفایت میکنه یعنی اگر مثلا فرض بفرمایید که کرایه مثلا فرض کن 1000 تومانه ده هزار تومنی در نگار بده پنجه هزار تومنی نده دو 2000 هنی بده نهایت پایین تومن این جبا یجبی برای این بکار میشه خود بگی اینم نمتن میشد مال خود گفتیم مثل مالی لا علل خود خود مید. قال آخر شاعر دیگری گفته فدا ایل ویده سما که زائری زائری یعنی زاری زار به معنای زره یعنی ضرر زر میگه فدع الوعید الوعید یعنی تهدید الفلام داره یعنی این تهدیدات این تهدیدهایی که داری میکنیرو بریز دور بریز دور این تهدیداتو بزار کنار دع اترک ف یعنی زیرا زیرا ما وعیدو که ظائری زیرا وید تو تهدید تو هیچ ضرری به من نمیزنه و این که اسم ماست زائری منصوب از تقدیرن اون زائر چون اضافه شده یا نسبش تقدیریه خبر ماست میگه برید دولن تهدیدات تحدیدات تو زیرا تهدیدات تو خب یه لحظه قطع شد. وصل کردیم. دوباره برمیگردم. بله. الان درست شد. خب. توجه کنید. گفتش که بریز دور این تهدیدات رو. این تهدیدا به درد نمیخوره. اینا بریز دور. زیرا تهدیدات تو که زلری به من نمیزنه. بعد میگه آیا تنین و صدای بال مگس یزی رو ضرری میزنه صدای بال مگس ضرر میزنه؟ اگر یادتون باشه این شعر تو یه نوعی از تشبیه هست و از زیبا هم هست چهنا تشبیهیه و همعمدی نوع تشبیه هست درش تشبیه زمنیست و تو جز اول یه چیز رو نسبت داده به مشبه که تهدیداتش باشه که تأثیری نداره بیارزه بعد براش مثال آورده گفته مثل وزوزه بال مگس میمونه که هیچ گونه به قول خودمون زرری رو و آفتی رو ایجاد نمیکنه که گفتیم تشبیه زمنی تو جز اول یه چیزی رو به مشبه نسبت میدن تو جز دوم براش دلیل و برهان میارن که این تشبیز نیست تو جز اول گفته تحدیدات تو هیچ تأثیری نداره تو جز دوم میگه مثل وزوز کردن مگس میمونه که هیچ گونه آفتی به حساب نه کسی رو نمیکشه اتنین و اجنحت زبابه یزیر ولی استفهامی که اینجا گفته ها که اینجا گفته این استفهامه رو برای چی آورده اولا اگه بخواید دقت کنید این استفهام در معنای نفیه یعنی زیر وزوز وز کردن بال مگس هیچگونه زرری ایجاد نمیکنه. استفان در معنای نفیه. کدوم برید دور این؟ وقتی شرم میفهمید برید دور این تهدیدات تو تو که به جای بند نیست ضرری نمیزنه. درست شو؟ زیرا وزوز وز بال مگس به جای زرری نمیزنه استفاده در معنای نفیه ولی ولی. بوش کنید. خود این تشبیهه برای چیه؟ خود این تشبیه زمینیه، قراز از این تشبیه زمینی تقدی... تحقیره یادتونه اقراض تشبیه رو میخوندیم که یکی از اغراض تشبیه تحقیر بود تغییر کردن و بیارزش کردن صدای اونو تشبیه کرده به بز, بز, بز مگس خود در واقع داره تحقیر میکنه درست شو؟ این استفهام رو اگر بگن در معنای نفیه درست هیچ اشکال ن معنای نفی یکی از معانی بود معانی مجازی بعد این استفهام در معنای نفی که شده تشبیه غرض ازش چیه؟ تحقیر درست شد؟ غرض از این تشبیه چیه؟ تحقیر مخاطب پس اگر یک نفری نوشت این استفهام در معنای نفیه معنای مجازیه استفهام میفهمیم اینجا در معنای مجازیه معنای مجازی نفیه بله یعنی گفته لیسه تنین و اجنهت زباب یزیر درست شو؟ زیرا وزوزه مگس هیچ هیچگونه ضرری نمیزنه اگر نفی گذاشته بود اصلا ما نمیگویم یه بارت خلطه میگفت ما تنین و اجنهت زباب یزیر درست بود استفان در معنای نفی اما چرا این تشبیه را انجام داده؟ به چه قرضی این تشمیه رو انجام داده صدای اون رو داد و بیداده اون رو تشمیه کرده به وزوز مگست برای تحقیره پس اینکه که گفته تحقیر در واقع معنای لازم رو گفته اصل این که باید در معنای استفهام دقت می کرد و می بعد باید اینجا می گفت استفهام در معنای نفیه استفهام در معنای نفیه، اما تشمیه زمنی قرض از اون تحقیره نبینه کتاب هم خلاصه جمعا الان راحت میتونید مطالب رو بفرنید میگه که اتنین و اجنهت زبایی از این ات تخیر شاعر نشاعر یوش به ها و اید ادو و به صوت اجنهت زبا یوشب به ها و اید به صوت اجنهت زبا خب بله تشبیهش دلالت بر تحقیر میکنه آه. همونطور که اگه تشبیه کرده بود مثلا به صدای شیر میگفتیم برای تعظیمه مثلا به پادشاه میگفت تهدید نکن چون تهدید شما کشنده است زیرا صدای شیر وحشتناکه میکنه آه. تشبیه اینجا برای تحقیره اما استفهام برای نفیه خب اتنین و اجنهت زبابی اتنین سلط و اجنهت زباب و یزیرو یعنی یزور مم. خب بریم سر مثال ششم. یه نفری بوده آدم رزمنده بزرگ مثل مثل حبو فراس هم داری خب اینطور تو زمانی که جنگ قیمت دارند، برای کشور رو نجات بدن برای اینکه شجاعت به خرج بدن همه براشون کرفتن اما در زمان صلح اینها دیگه به قول خودمون قیمتشون رو کم میشه و به قول ما باید کنار بکشند و اون کسان دیگری که میداندار هستند اونها بیان بسند اینطوریه دیگه قیمت اینها تو میدان جنگ میشه فزنش. ایشون میگه که ازاونی منو تباه کردن من رو زایه ساختن بعد میگه و عیفتن می ازاون و چه جوان مردی هم زایه کردن مثل که بگیم قدر فلانی رو ندونستن چه کسی سیر قدرش رو ندونستن شما از این چی میفهمید؟ تحضیب بارها بارها شما قدر فلانی من نفت چه ندونستم چه کسی رو هم قدرش رو همه از یه میفهمن این میگه ازاؤونی من رو زایه کردم قدر منو ندونستن و عیفتن فتن ازاؤون عیفتن مفعولون به ازاؤست چون موربه ایمنسوش شد استفهان هم از صدارت داره مقدم شد میگه منو تباه کردن و چه کسی چه جوان مردی رو تباه کردن من از دست دادن چه کسی رو از دست دادن برای که لیوم کریحتن و صداد سقره برای روز جنگ کریه اسم جنگ برای روز جنگشون من رو از دست دادن و صداد سقره صداد یعنی بستن صد کردن صقر توی مرز جاهایی که دشمن نفوذ میکنه لب مرز سغور میشه جمعش حدود سغور حدود مرز ها اون جایی که محل نفوز درست میگه من از دست دادن چه کسیرم از دست دادن برای روز جنگشون و بستن مرز هاشون اون جایی که دشمن حمله کنه و باید مرز رو ببندن و روز جنگه من از دست دادن چه کسیرم از دست دادند ازاونی و ایه فتن ازاون ایه اسماعی دانمال ازافه استی ازافه شده به فتن ات تعظیم تعظیمه لعن متکلم یورید و انگر فهم شعن نفسی جمعات خود شو ببره بالا و یو بینو انهو اماد فی اوقات الهروب و شدایت و میخواد بگیم منم ستون همه مردم این اشیره و تایفه در وقت جنگ و شدائد پایین میگه علکری حتو از و فلخ و صقر موضع مخافت منال قدو محلی که خوف دشمن از اونجا هست در حدود البلدان در مرز کشورها اون جایی که دشمن از اونجا ممکنه نفوذ کنه و یزح و یورید و به و منظور از این که مرز و پر کنه اون نفوز رو ببنده منظور اینه که با نیرو و لشکر رو آدم ببنده دیگه با سیمان و که نمیگه و یورید و به صدادهی صد دفو و رجال و منظورش از این که صد اون محل نفوز رو ببنده بستن اون محل است با سربازان خیل سواران و مردان جنگ یعنی از دست دادند من رو اونم چه کسی رو از دست داد؟ آه چه کسی رو از دست دادند؟ برای روز جنگشون آه و موقعی که مجبور بشن اون محل نفوذ دشمن رو ببیند خب بحث استفام بسیار بسیار کامل شست رفته تمام شد یعنی هرچی که میخواست یک نفر بفهمد از استفهام من برای شما گفتم. یه دو دقیقه با قول خودمون این استراحتی بکنید یه دو دقیقه تا من بحث تمنی رو برای شما مقدمه سازی کنم و مباحثش رو بیان کنم. and خب خسته نباشی سر چهارمین مورد انشاء طلبی تمنی میگه التمنی تمنی یعنی اون تمنی که در علم بلاغت ازش بحث میکنند و در علم معانی تمنی یعنی تمنی اصطلاحی الم خود کلمه تمنی تمنیان چیه؟ این مستره تمنا یا تمننا میشه خب تمننای اگر زنبرو رو یا تبدیل میشه به واو میشه تمنو به مناسبت یا زنبرو تبدیل به کسره میکنن میشه چی؟ تمنی مثل تفش شای یه تفشی ها تفشی تفش پس تمنی درسته الان بر وزن تفعیله ولی اصلش بر وزن تفعیل بوده و مستر باب تفعیل خب این فهمیدیم کلمهش مستره و چطور ساخته شد. تمنی چیست یعنی تمنی تعریف داره. نگاه کنید. تمنی عبارت است از اینکه متکلم طلب کند امری رو. متکلم طلب کند امری. رو. تا اینجا هنوز تمنی نیست امری که محبوبه. بهش علاقمند میخوادش. طلب کند امری که محبوب خب حالا ما بیبرد. ما طلب می‌کنیم پول پول محبوب ماست میخواد طلب می‌کنیم علم علم محبوب ماز میخواد طلب می‌کنیم سلامتی رو سلامتی محبوب ماست میخواد همه اینا شو تمنی نه طلبی کند متکلم امری رو که محبوب اما شرطش اینه هر امر محبوبی رو که شما طلب کنید تمنی به حساب نمی‌ذینید شرطش اینه که اون امر محبوب یک لا یرجا حصوله لا یرجا حصوله یعنی حصولش وجودش به دست اومدنش بهش امیدی نیست لا یرجا حصوله امیدی برای به دست آوردنش نیست حالا شما یه موقع هستش که طلب میکنی یه چیزی رو حصولش هم چیه؟ ممکنه, ممکنه. چیه؟ طلب عمر محبوبیه که حصولش هم میگه مقابلو... تشنت آب مخواهی بگه کاش الان آب بود تشنت آب بخور طلب عمر محبوب لا یرجا حصوله حصولش بگیر امیدی بهش نیست حالا این دو نوعه این که امید بهش نیست دو نوعه یا اصلا محال مرده میشه نیشون که میگه ای کاش من جوان بودم اون دیگه نمیشون تموم ای کاش من پرنده بودم دوست داره به پره. طلب کرده عمر محبوبی رو که امیدی بهش نیست این امید بهش نبودنم به خاطر اینکه که محال دیگه نمیشه جوان باشه دیگه نمیتونه پرنده باشه مستحیل خیلی از مواقع این مستحیل، ممکن نیست یا شدنیست میشه اما این آدم گونه طمعی در اتفاقش برای خودش نداره برای این اح... شدنیه اما برای این آدم احتمالش یک میلیاردیومه یعنی در حد صفر در حد صفر نه که محال باشه محال نیست او در حد صفر مثل که فرض کنید مردم میدیدن قارون چه ثروتی داره که کلید در انبارهاش رو چهل نفر فقط نمیترستن ببرن اینقدر ثروت داشت قارون دوران بعد مردم میگفتن یا لی مثل ما یا قارون ای کاش ما هم به اندازه قارون ثروت داشتیم خب اینا طلب میکردن یه امری که محبوبه ثروت خب اما امیدی بهش نداشتن حالا این امید نداشتن به خاطر این محال بود وای خب این محال بود که خود قارونم به دست نمی آورد چون محال اتفاق نمی بلکه ممکن بوده میگن عدل و دلیل نلا وجودشه وقوع بود دلیل بر اینکه یه ای چیزی میتونه باشه اینه که یه بار اتفاق افتاد شدنیه. اما این آدمها هیچ گونه امیدی به اتفاقش برای خودشون نداشتن. هیچ تمایلی برای این نداشتن. پس نگاه کنید تمنی رو چی تعریف میکنه؟ تو قاعده 49: از تمنی طلب و امرن. یعنی طلب المتکلمه امرن. این طلب مستر زوشی به مفعولش فایلشانه متکرده طلب امریست محبوب لا یرجا حصوله که امیدی به حصولش نیست صفت دوم امر امری که محبوبه و هیچ امیدی به وجودش نیست اما لکونهی مستحیلن یا به خاطر اینکه این مستحیله ام مال کونهی مستحیلن یا به خاطر اینکه این, این مستحیل، محال شما میشه مستحیل یعنی یا عد دو محاله محال سابرش نه نشدنی هستم مثل این که میگه ای کاش من پرنده بودم ای کاش من جوان میشه خب اینا امر محبوبه اما امیدی به وصولش نیست چون محاله نمیشه شدنی نیست و ام مال کونهی ممکنن یا شدنیه نمیگه جز محالاته محال نیست اما ممکنیه که غیرمتموع فی نیله این آدم هیچگونه تمعی در نیل و نائل شدن روان نداره برای این در حد صفر پس شد درست شد؟ ادمنی طلب و عمر محبوب لایر جا حصوله اما به کونهی مستحیلن و این مالکونهی ممکنن غیر مطموع هیل. تعریفش فهمید حالا نگاه کنید برای تمنی ما یک کلمه بیشتر یک عداد بیشتر نداریم یه چیز بیشتر برای تمنی تو عربی وضع نشد اونم معنای لفظ لایت است لایت لایت برای تمنی ای کار و لفظ الموضوع تو 50 و لفظ الموضوع لتمنی لایته لفظی که وضع شده برای تمنی لایت است فقط پس عداتش لایته تعریفش طلب امر محبوبی که امیدی به شدنش نیست حالا این امید به شدنش نیست یا به خاطر اینکه محاله یا به خاطر اینکه اتفاق ممکنه بیافته جز محالات نیست ولی شدنش در حد صفر است میشه این آقا هیچ تمهی در نیلو به آوردن اون نداره اگر اینو دیدید نگاه کنید مثال یکو براتون بخونم امثله یک میگه قال ابن رومی قال ابن رومی فی شهر رمضان. ابن الرومی در مورد ماه مبارک رمضان بود چون میده ماه مبارک رمضان شبهاش از نظر اینها باسفا بوده چون درهم میشستن میخوردن مینوشیدن هیچ مشکل روزش کسل کننده بوده تشنگی و گشنگی و اینها میگه چی؟ میگه فلیت اللی لفیه کان شهر ای کاش تمام شبها اللیل. در این ماه رمضان کان شهرن یه ماه بود ای کاش تمام شبهاش هر کدوم یه ماه بود هر کدومش به اندازه یه ماه دول میداشد شبهاش حالا ممکنه؟ نه. میگه کاش شب‌های ماه رمضان هر کدوم یه ماه می‌شد. و مرنه هاروهو و میگذشت روزش مرس صحابی مثل گذاشتن م وسهاب مقولول مطلب نوعیه دیگه مثل گذشتن ابر ها ابرا تو آسمون دیدی سر وم کل بار بود. مثل که بگیم مثل برق بگن. کاش روزش مثل برق میگذشت هر روزش روزش میشد یه دقیقه مثل برق میگذشت شبهاش هر کدوم یه ماه بود تا اللیل فییه گان شهر و مرن نهارهو مره سحاب خب این الان چی بود؟ طلب کرد امر محبوبی اون امر محبوبش چی بود؟ اینکه شب شبهای ماه موورده که هر یه شبش که مثلا ده ساعته میشه سی روز سی شب یک ماه و روزهاش که مثلا فرض کنی 15-16 ساعته بشه ده ده اون محال دیگه درست شد طلب امر محبوبه اما امیدی به حصولش نیست چرا لکونهی مستحیل این مثال دیدید این مثال مال این اتمنی طلب و امر محبوبن لا یرجا حصوله اما لکونهی مستحیلن مثالش همین یک همه شرایطو داره مثالش یک بعد پنج پنجو بخونه پنج و وقالت حالا از زبان مردمی که قارون رو میدیدن قارون ثروتمند زمان موسی بود جوری که تو قرآن داره ان مفاتیحه لتن و کلیدهای در گاو صندوقاش رو چهر نفر نمیتونستن باز کنن فیلی مردم این قارون رو میدیدند اون این همه ثروت داره لسا برمیگشتن و گفتن یا لایته این یا لایته حالا یا به معنای علاست علا یعنی آهای حرف استفتا که بیشتری نمیگن یا حرف نداس و منادا هست شده یعنی یا قومه این نظر دومه تو نه یا لایته یعنی علا لایته آهای کاش لییت لنا کاش بود برای ما مردم مردمگفتند. مثل مثل آنچه که اوتی قارون یعنی اوتیه قارون آیسه افته. کاش مثل آنچه که به قارون داده شده است برای ما هم بود. کاش ثرتی مثل ثروت قارون به ما هم میدادند. کا اینکه اونها ثروتی مثل قارون داشته باشند محاله؟ نه اگه محال بود اینطور ثروت، دست قارون هم نمید. چون امر محال اصلا احتمال نداره درست شد؟ محال شدنی نیست پس بنابراین همین که خود قارون داره دلیل بر که ممکنه اما چقدر احتمال اونا میدادن اونها هر کدوم قارون بشن؟ یک در حد سه یک میلیاردی لذا میگفتن یا لیت با لیتن بگفتن مثل یعنی سروتی مثل آنچه که اوتیق اوتیه قارون این قارون لا فایل اوتی است عاید سله که مفعول دوم اوتیه بوده حد شده یعنی اوتیه قارون لنا خبر مقدم لیت است مثلا اسم مؤخرش میدونه که اسم مؤخرن حروف مشبعه تون بسن فقط اگه جارو و مجرور ظرف باشه میتونه مقدم شه مثل ان معل اسره جسر یا لیت لنا مثل ما اوتیه قروب این مثال کدومه؟ مثالونه اتمنی طلب و امر محبوبه لا یرجا حصوله ام مالکونهی مستحیلن مثالش فلا فلیت لیله فیه گانشن و این مالکونهی ممکنن غیر متموعن فی نیلهی مثالش یا لیت لنا مثل ما اوتیه قروب پس مثال یک برای نیمه اول تعریف مثال 5 برای نیمه دو بودش. برای نیمه 2 خب حالا نگاه کنید یه مطلبی دیگه. لایتا گفتیم برای چیه؟ لایتا برای تمنی. حالا چه تمنی امر مهان؟ مثل مثال یک چه تمنی امر غیر محال ولی غیر مطموع فی مثل مثال پنج لیته اصله یعنی این دوتا مثال یک و پنج هر دو تمنی هند نوع یک و دوش. هر دو هم عداتی که توش بکار رفته حقیقته خود لیته بکار رفته لیته بکار رفته برای تمنی اما نگاه کنید گاهی گاهی تمنی هست از نوع یک یا دو تمنی هست از نوع یک یا دو. ولی به جای از یه حروف دیگه استفاده میکنند به جای لیته از یه حروف دیگه استفاده میکنند اینجا حرفه میشه مجاز حرفه میشه مجاز تمنیه تمنیه ها. حالا یا محال از نوع یکه یا غیر محال ولی غیر متموع فی نیلش از نوع دومه که مثال پنجم بود ولی به جای مثلا لیته از یه حرف دیگه استفاده کرده حتما نکته بلاقی هم داره. ولی اینجا الان شاعر ما مثال یک و خداوند تعالی در مثال پنج همون لیته رو استفاده کرده اما گاهی اوقات به جای لیته از چیز دیگه استفاده میشه نکته توشه پس تمنیه تمنیه عداته به جای لیته چیز دیگری اومده مجازن به خاطر نکته ای نگاه کنید میگه و لفظ موضوع بعد میگه و قد قد بر سر فعل مزاره یعنی گاه و قد یو به حل گاهی اوقات به جای لیته از حل استفاده مثلا تو اون بالا به جایی که بگه فلیت اللیله گفته فحلل لیلو مثلا یا این پایین خداوند به جای که بگه یا لیت لنا بگه حل لنا مثله حل لنا مثله این طور بگه به جاش و تمنا به لو و لو ولعله این ستا توی تمنی گاهی اوقات مجازن میاد جای لیتن لقر از اند اگر همینطور کشکی بگی اومده خب غلطه خب چرا از اصلی که لعیته هستش ادول کنیم؟ بلکه اینجا بگو غلطه که بگیم ما همینطوری نه نقرزن تلاقیه نکته دوشیم ببین نکته ای که برای حل و لعله هست دوتاش یکیه بهترم بود که حل و لعله رو با هم ذکر می کرد بهترم این بود که حل و لعله رو پشت سر هم ذکر می کرد بر لو رو جدا چون لو به خاطر یه ای میاد جای لیت میشینه حل به خاطر یه نکته این دوتا توش یه غرز هست چه مثلا بگیم حل اللیلو چه بگیم لعل اللیلو یه قرض. اما اگه لو گفتیم آه؟ اون یه غرزه تیکه بس پس اینطور که گفته وقدی و تمنا به حل و لو و لعله آدم احساس بکنه سه تا غرزه نه یه قرازه برای حل و لعله یه قرازم هست برای لو و قد یو به حل و لو و لعله لقرازن بلاغی من قراز بلاغی رو میگم شما هم تو ذهنتون داشته باشید ساده است اگر حل یا لعله به کار ببریم جاییه که متکلب درست امر محاله درسته یا امر شبه محاله یعنی ممکنیه که هیچ کنه به قول خودم به رجوعش نیست حصولش نیست ولی متکلم به خاطر شدت علاقش اون به شکل ممکن بخواد نشون بده چون لعله برای ترجیه برای امر شدنیه حل که سوال استفاده درست شد پس اگر یک جایی به جایی لیتر از حل یا لعله استفاده شد اینجور جا جور جاییه جایی که متکلم خیلی خیلی علاقمنده به اینه جوری که انگار این امر نشدنی را بگید شدنی میبیند مثلا اگر این مردم به جای که بگن یا لیت لنا مثله میگفتن حل لنا مثلو ها این یعنی خیلی شوق داشتن که این امر نشدنی بشه گفتن حل لنا مثلو اینطوری بگفتن اما الان که لیت هم میگن اینطوری یا لنا مثل ما کاش ما مثل اینو داشتیم ها همونطوری میگفتن هل لنا مثلو بیشه لعل لنا ل. شاید ما مثل این داشته باشیم اینطوری امر نشدنی یا امری که نزدیک به نشدنیست رو به شکل شدنی به خاطر شدت علاقه این مال لعله و حل ام. اما لو چی؟ لو جایی که این امر نشدنی یا این امر نزدیک به نشدنی امال ممکنن ممکنا غیر مطموع دید. اینو میخواد بگه حتی در ظاهرم من بهش امیدی ندارم حتی توی لفظم بهش امیدی ندارم مم. یعنی اگه لعیتر گفت گفته بوده کاش با لو چه بگه بگه نو لنا مثل نو انه لنا مثل یعنی تو سرش کنید کاش مثلی برای ما یعنی یه جوری که اصلا امید به حتی گفتن کاش هم ندارد الان نگاه کنید من دوتا آیه براتون مثال میزنه یکی رو تو بحث استفهام خوندیم که گفتیم استفهام در معنای تمنی. مثل حل لنا من شفعا فیشفعو لنا حل لنا من شفعا فیشفعو لنا اینجا چرا جهنمی ها نگفتن لیت لنا شفعا فیشفعو لنا چون دیدن یه اد از بهشت میرم بیرون چی از جهنم میرم بیرون به طرف به شفاعت شاملون وقت آیا میشه ما میرن چی چیزی داشته باشی میشه ما یه شفاعت کنندگانی داشته باشی میدونستن نمیشه ها ام چیزی نیست ولی به خاطر شدت علاقه شون که دوست داشتن از جهنم رها بشن به جای لایت از حل استفاده کردن یا در جای دیگری تو قرآن همین جهنمی میگن حلن آمن خروج حلن آمن خروج آیا میشه ما از اینجا خارجی آیا راه فراری هست چون میبینن یه ادعی بهشون شفاعت میخوره میرن بیرون به شکل خیلی خیلی شاعر هم اما اما یه هم ما میبینیم میگن مثلا لو انلنا کردن لو انلنا کرد نمیگن لیت لنا کرده کرده یعنی جه یعنی بازگشته بدون. میگن لو اننا با لو میگن. یعنی میدونن که برگشته به دنیا دوباره زنده شدنشون تو دنیا و دوباره برگشتشون به دنیا حتی نه تنها شدنی نیست، بلکه آرزوش هم غلطه نظام میگن لو ان لنا کرد کاش برای ما برگشتنی به دنیا بود فهمیدیم ما پس اگر با حل و لعله بگن نهایت اینه که بگیم دهنشون آب افتده امر نشدنی رو به خاطر شدت اشتیاقشون دارن شدنی تصور میکن اگه با لو بگن یعنی اینکه که حتی قصد ای کاش گفتن هم دیگه ندارن میدونن شدنی نیست به این شکل بیان کن. لذا نگاه کنید چی میدون میگه وقد یوتمن نابحل ولعل ولو حل ولعل یکیه دو هم یکی لقر از این بلاقیه به خاطر قر از قاین نگاه کنید تو یک همین توضیح که من دادم میگه که بگه فی حل ولعل هو ابراز المتملا فی صورت الممکن قریب الحصول لفظا اون متمنلا اون امر نشدنی یا متمنلا اون امر نزدیک به نشدنی رو در شکل ممکنی که قریب الحصوله نشون میدهیم یعنی در شکل ترجی یا در شکل استفهام نشودش. به خاطر شدت علاقه. چرا لکمال عنایت بهی و تشوق علیه؟ به خاطر اینکه متکلم خیلی عنایت به اون داره و خیلی شوق به اون داره. تشوق به اون داره. چون خیلی دوست داره این امر نشودنی رو داره به شکل شدنی جلوه میده. میگه لکمال لعله و عل و فی لو اما عکسش قرظ در لو علی و علی اعلانو. اعلان و اعلان کردن به عزت المتمنه و ندرته یعنی به این که اصلا این عزیز نادره یعنی نشدنیه به انتفاع المتمنه مثلا منتفیه آرزوش هم نباید کرد بالو لانا المتکلم یبرزه فی صورت الممنوع زیرا متکلم داره اون رو به شکل ممنوع یعنی منتفی نشون میده نشدنی نشون میده چرا از زیرا ن نه زیرا ان لو تدلو به اصلها و از اینها الامتناه جواب الامتناه شرط زیرا لو در اصل وضعش عدات شرطی بوده که برای ممتنع شدن به کار میفته مثل اینکه میگیم لو جعتنی تو لأكرمتك، اگه اومده بودی اکرامت میکردم یعنی لمی وعده اکرامم نیست لو برای این دیگه ها بنا امر منتفی لذا به لو میگن حرف جواب ل لأمتن... حرف و امتناع ل حرفیه که جواب ممتنع شده به خاطر اینکه فعل شرطش ممتنع شه ممتنع به ان لو تدل به اصل وضع ها جواب ل امتناع چون جواب ممتنع شده به خاطر اینکه شرط ممتنع شد پس این ستاعدات مجازی جای لایکه میشینه هل و لعلش هل و برای شدت اشتیاق و متکلم به امر شدن به کار میره چون خیلی دوست داشته تو ذهنش اینا رو شدنی دیده لو دیگه حتی گفته من آرزوشم نمیکنم آه؟ یعنی لعیتا به کار یه پله از آرزو هم پستر یعنی حتی تو لفظم نمیخوام بگم ایک این مثال دو و سه و چهار مال اینه دوش مال حله سهش مال لوه چهارش مال لعلس. حالا اگه بخوایم چینشش بکنیم باید دو رو بذاریم سه چون یک و پنج کردیم یک و دو نه نوع یک تمانیه بعد دو میشه سه که حل اومده جایی لعله چهار میشه چهار که بگو لعله اومده جایی لحی تر لو هم میشه که مثال سه باشه پنج لو هم میشه پنج که لو اومده جای لحی تر حالا چینشش رو اینطور که من گفتم ها اگر بخوایم بچینیم چینیم چجوری میشه اگر تون بگید ببینم با این شکلی که مثالها رو گفتیم خب اگر بخوایم ردیفش بکنیم یک میشه یک پنج میشه دو دو میشه سه چهار همون چهار میمونیم سه هم میشه پنج بعد یک میشه نوع اول لیته مثالش هم با لیته. پنج میشه نوع دوم لایته. مثالش هم با لعیتر. یعنی نوع دوم اون ام مالیکونی ممکنن غیر مطلع دو میشه مثال سوم ما که لایتر رو جاش حل گذاشتیم چهار میشه مثال چهارم ما که لایتر ورداشتیم جاش لعله گذاشتیم و سه هم میشه مثال پنجم ما که لایتر رو و جاش لو گذاشتیم تو این دو و سه و چار تمنی هست اما عدواتش مجاز شده یعنی به جای لیکه از هل و لله و لو استفاده شده این یه مطلب مطلب بعد بحث ترجی رو بحث میکنه که انشالله میماند برای جلسه بعدمون مطالعه بکنید و مباحث رو خوب بفهمید و اگر فهمیدید دیگه مبحث ساده است من درس رو گفتم انشاءالله جلسه بعد دوباره تکرار خواهیم کرد و مبحث رو به پایان میرسونیم به شرط اینکه شما هم حمدتون رو بگذارید و این مباحث رو یاد بگید ما داریم به شکل ریاضیوارش کردیم یعنی به شکلی که شما بتوانید خوب مباحث رو عقلانی یاد بگید. در پناه خداوند معید و معید باشید. خداوند دنایت کاملی داشته باشه. انشاءالله همه مشکلات هم حل بشه. تا جلسه بعد هم خدا نگهداریشون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.